لا هدرك لم ولم تسر ولم بسم الله الرحمن الرحيم الله با برنامه امروزی ما خوش آمدید امروز جمعه تاریخ دی روی آسانه مطابق دوی مارچ حرکت اسلامی ازبکستان رادیوی صدای الله نشرت فارسی خود را ادامه می دهد تشکری می نماییم از همکاران بخش ازبکی ما که موضوعات جالبی را به خدمت شما تقدیم نمودند اما ما در برنامه امروزی این موضوعات را پیگیری می نماییم سلسله اندرس ها گفتگوی با یک برادر مجاهد گفته های مسلم در مورد وضعیت کنونی در افغانستان گزارشات داغ هفته و همینطور ختم پرگرام شما را زیاد منتظر نمی گذاریم می به طرف بخش اول برنامه البته در این بخش را به خدمت شما تقدیم می نماییم که احمق را سی تاییش خوش آید. سی موزر تقوی را می گیرد ارزشمندی با کمیابی هر چیز است نه به زیادی آن به هر چیزی کم باید قانع بود ترحوم به دشمن مکن تجربه و مهارت مهم است زخم زبان از زخم تیر بدتر است با تلاش مقصد حاصل است تا جان در خطر ننهی بر دشمن غلبه نیابی چون نداری طاقت نیش. مکن انگشت در سوراخ گجدم الذي كان جيننش فنلهحبوان بدم س على سفرين في جنبات ليس نوبت را به مهمان برنامه می دهیم. که از ایشان چی گفتنی ها و نصیحت ها دارن بسم الله الرحمن الرحیم اسم من رجبالی یک تن از مجاهدین حرکت اسلامی و ازباکستان میباشم و در نوبتی خود در نوبتی اول سلام گرم دلچسب خود را برای شنواندگان صدای جندالله تقدیم مینامیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو برادر محترم چند وقت می شود که رادیوی صدای جند الله فعالیت آغاز نمود نظر شما در این مورد چی است بفرمایید رادیوی صدای جند الله در خدمت شما است <تصفح> الحمدلله که این یک ای نعمت الله سبحانه و تعالی است که برای ما و شما میسر گرداند صدای جند الله الحمدلله فعالیت شروع کرد و ما بسیار خوش هستیم و از کارمندان شما و از کارمندای صدای جند که الحمدلله برنامه های فایده آموزی خود را برای برادرای ما تقدیم میکنه و از برادرای ما خواهیش خواهش ما همین است که با دقت برنامه های شما رو گوش بگیرن و فایده از این فایده حاصل کنند و خواهیش من از برادران این که از این فایده بگیرن و کسایی که در این برنامه کار میکنن و مسئولیت دارن باید برای مردم برای کسانی که مشتاقی شنیدن جند جندالله هستن برای اینا شرایط را مساعد بسازن که برادرای ما از فایده بگیرن برادر محترم کدام واقعات جالبی که در طول دوازده سال در راه جهاد مقاومت داشته باشید به شنواندگان رادیو مهربانی کنید الحمدلله وقتی که ما بعضی Bro, daroymo sabab mo dairoh bro madih kardim, wa wakte kimoa moa az Tajikistan va Afghanistan migrat kardim, da wakte imarat Afoniston Afghanistan faoliyat docht, da wakte imarat alhamdulillah madih bachech misarih od imarat islamia wa Badiskuti iskuti imarat bsiyr taklifhao, mushqat Thamul Shidem shdeim alhamdulillah الله سبحانه و تعالی او روزا را هم از ما تیر کرد. گزشتیم الحمدلله و از خداوند. همی را که تا آخیره که در ما روح حرکت میکند. خونی ما حرکت میکند در این مقاومت و استقامت را نصیب بگرداند برای ما. چرا که ما در این راه عبادت بزرگ بسیار چزار را دیدیم الحمدلله و Skota didem, fotot didem alhamdulillah, nosrati ilo hiraba tchash misari khat didem, wa psyor mujohidina didem kidar awal psyor karda gardagjasna, wa pason, ja psyor jihod muharif shedapos baxa zaloolato khori mubtalou sheddan, ja shodawan di mutaal harwah Allah persemki ja blospano otoloma rodairo, sobit khadon, mustahkan bigardon, dua broda roimoroham. در این راه ثابت قدم مستحکم بگردانه چرا که این رای جهاد رای خطر است. رای جهاد رای مشقت است. هر کس نمیتواند که در این راه تا آخر مقاومت کند. کسی را که الله سبحانه و تعالی خودش استقامت نصیب کرد، اما آدم میتواند که تا آخر استقامت کند. برادر عزیز، برادرانی که نو هجرت کرده به دیار جهاد آمدند، و به یک زندگی نوین روی آورند کدام گفتنی های نصیحت آمیز داشته باشید ابراز نمایید تشکر زیاد و برای برادرایی که نو هجرت کردگی هستند و نو به یک زندگی نو شروع کردگی هستند با آنها گفتنیای منامی است که بعد دایره اول دایره صبر ضرورت است اخلاص ضرورت است صبر تحمل به هر چیز چورو کی در راہ جہاد ہر قسم امتحانات اس مشکلاتھا اس دشنگی اس تشنگی اس اسارت برای نو Nasihati manamjaskias boro daro ki darin rohi muborak darin Ebodati dati azim kiallah spanaotolo baroimau atonumudas da inrohi jakkame isthkomatka da boz shayton wa swasara da kalbi on hoan dohta basa samekak jihot kardin part of tanarawan. Taohir kiallah in inrohe ki amonaddo dagias تو بارمدن این in ده این روح باید استقامت sabru و از خدایان هر وقت صبر و استقامت رو بپرسن چرا که این راه مشقت است این جای راحت نیست هر وقت ما را خوف تعقیب میکند ترس تعقیب هر وقت خداهان استقامت بپرسیم و اول برای ما که خداهان ما رو از این راه منحریف نسازه و بعدا برای خداهان که این هجرت که برای الله سبحانه و تعالی برای زیاد انسان را نصیب کردگی نیست برای شما ما و شما این نعمت بزرگ رو نصیب کردگی است بعد برای شب و روز شکر کنیم این کم است شب و روز بعد ما حند بگیم که Allah Subhanahu wa Ta'ala ma ro ba in ibadat ehtiyar kerd. Ma laiq nabdim walekin Allah Subhanahu wa Ta'ala ma ro ehtiyar kard va az Khudaan mepursem ki ma ro az az fatihan-e imarat ki nusrat ki amin nasib Takaa kiitos الحمد kiitos, että olette tänään tänne. Kiitos, että olette tänään tänne. Kiitos, että olette tänään tänne. Kiitos, että olette tänään tänne. Kiitos, البته به همه ما و شما معلوم است که از چند هفته بدین سو به خاطر به آتش کشیده شدن قرآن کریم ملت غیور افغانستان بار دیگر با غیرت ایمانی با پا خواسته در سرتاسر سر افغانستان علیه حکومت مرتد و غربیان متجاوز به تظاهرات پرداختند البته این یک بشارت به امت اسلامی و خاصتا به مجاهدین کرام میباشد که نصرت الهی قریب است در این مورد مجلس مسلم گفتگوهایی دارند ke inag wa ham mishnawim ay millat-e ghayur-e musalman-e afghanistan shoma alhamdulillah dar asar-e soxtandan-e quran tazahurat-e jihad ro bar awandakhta qurbaniha-ye ziyade ro motahammal shodid va zarabat zahiri بخاطر دیفع از اسلام و مقدسات از هیچ و قربانی دریق نمی ورزن. بلکه سر می دهن نه ایمان قربانی های تان را به نمایندگی از مجاهدین سر حرکت اسلامی ازبکستان مبارک باد گفته از سمیم سپاس سپاسگزاری می نمایم و از الله جل جلاله آجزانه خواهنم که قربانی و فداکاری های شما را به خود مقبول و منظور فرماید در موجم بلدان حدیث نقل شده است، که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید خراسان کنانات الله اذا غزى بقوم رماهم بهم خراسان جایی جنگ الله جل جلاله است وقتی که الله جل جلاله به قوم ظالم غضب کند توسط مردم غیور خراسان رسوا و سرکوب خواهد کرد افغانستان نیز یکی از مناطق خراسان می باشد الحمدلله به با تجربه تاریخی ثابت شده که در ادوار تاریخ افغانستان در هر اصل تاریخی برای امپراتورهای ظالم جهنم گردیده درس سبق آموزانده. حدیثی که قبلا قراعت نمودم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید نیست هیچ پیغمبری که فرستاده است او را اللہ جل جلاله در امتش قبل از من مگر اینکه بود برای آن پیغمبر دوستان خالص و یاران که عمل میکردند کردن به سنتای آن پیغمبر و اقتدا میکردن به فرمان آن بعد از این پیغمبران مردمان میآیند میگویند آن شیء را که نمی کنند و انجام می دهند آن چیز را که امر کرده نمیشوند رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرماید پس کسی که در مقابل این قسم مردم به دست خود جهاد و مبارزه میکند آن مؤمن است و کسی که در برابر این طبقه مردم به زبان جهاد میکند آن مومین است و کسی که به قلب مبارزه میکند مؤمن است و نیست بغیر از این مذکور به اندازی دانه اسپند از ایمان پس مستاک این طبقه مردم شریع در عصر حاضر منافقین و مرتدین است که خود را مسلمان دانسته با سلیبه ها در جنگ علی اسلام حمایت و پشتبانی می کند بالای این طبقه مردم جهاد فرض است پس کسی که این قسم مردم را مسلمان دانسته در برابرشان جهاد نمیکنند کنند نیست در اخیر به تمام امت اسلام بلخصوص به ملت مسلمان و دلیل افغانستان بشارت میدیم که کفار دنیا از هر لحاظ به شکست بزرگ رو برو شده در حال پلان خروج از افغانستان از طریق شمال از رای تاجکستان از و قذاقستان و هم پروگرام خروج از طریق پاکستان را نیز دارن انشاءالله قیام خلافت اسلامی قریب است و انشاءالله به نصرت الله جل جلال و قرآن را به تمام دنیا حاکم می سازیم. و ظالمان تاریخ زد بشریت را به جزای اعمالشان ان شاء الله خواهند رساند و ان شاء الله تعالی با قربانی کردن جان و ری زاندن خون خود خوردن و خوابیدن را به تمام کفار دنیا حرام می‌گردانیم از دعای خیرتان فراموش نکنید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته يا منذر الاخلاق عطرا لانا اعطيت نصر فاسجد لله شكرا In the Nan Alma Homedon البته در این بخش گزارشات داغ هفته به خدمت شما تقدیم می‌گردد. فراموش نکنید که امروز خبرهای جالبی داریم. شما را زیاد منتظر نمی‌مانیم. مرویم به طرفی اخبار. افغانستان سیرابی آسان مطابق 24 فوریه بخاطر سختانیدن قرآن کریم در میدان هوایی بگرام تظاهرات پی در پی در تمام نقاط افغانستان ادامه دارد. در همین حال به تاریخ مذکور در شهرهای کابل، هرات، خوست، گردیز، بغلان تظاهرات صورت گرفت. که در نتیجه این تظاهرات پانزه تن از مظاهره کنندگان کشته و بیش از شست تن آنان مجروح گردیدند، در همین حال بیست متر اکمالاتی اردو باشمول یک این انجار نیست توسط مظاهره کنندگان با آتش کشیده شدند. چهار رپیسانی مطابق بیست پنج در ویلایت قندوز و لغمان مظاهره صورت گرفت که در نتیجه آن هفتن از مظاهره کنندگان، چهار اسکری خارجی و یک پلیس به قتل رسیدند و هفتاد شش تن افرادی ملکی باشمولی ده پلیس نیست مجروح گردیدند. در همین روز در ولایت کابل در داخل وزارت داخله دو مشاور خارجی که ردبه یکی آن داگروال و دیگرش جگران بود با ضرب گلوله به قتل رسیدند در همین حال در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری یک ماین انفجار کرد که در نتیجه آن 26 تن با شمول اردو پلیس و غیره کشته شدند و تاریخ مذکور در ولایت بادغیس پلیس میخواست خواست جاسازی شده را خنسا سازد ولی کن الحمدلله موین انفجار کرد که در نتیجه پنج پلیس کشته و پانزه تن آنان جراحت برداشتند پنج ربی سانه مطابق 26 فیبرواری در ولایت کاپیسا وولوسالی تگاب در اثر عملیات نیروهای فرانساوی سه فرد با شمول دو کودک کشته و دو تن دیگر نیز مجروح گردیدند و همچنان در جنوب وولوسالی مسکور یک اراده رینجر اردو با ماین جاسازی شده تصادم نمود که در نتیجه سه تن از ساکیر اردو زخم برداشتند بعد از حقیق نخادثه پلیس سه فرد را با یک میل کلاشونکوف دستگیر نمودند در امین روز در ویلت جلال آباد یک فرد پلیس دو از کریناتو را بازر بگروله به خطر رساند شاش رابی آسانی مطابقه 27 فیورواری در میدان هوایی ولایت جلال آباد یک برادر استشادی با استفاده از یک موتر مملو از مواد منفجره حمله استشادی نمود که در نتیجه 9 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند نظر به گفته های زبی مجاهد اکثر کشته شدگان نیروهای ناتو می باشند اما رسانه های میگوید می گوید که در این عملیات فقط 3 اسکر نیروهای ناتو زخم برداشتند همچنان در همین روز نظر به گفته های رسانه های حکومت مرتدی افغانستان در نتیجه مظاهره در سر افغانستان بیش از چیل تن کشته و 200 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال با وجود این به حرمتی به قرآن کریم دست نشانده آمریکا مرتد حامد کرزه چینین میگوید. این بیغیرت تاکنون دوست و دشمن را نشناخته. قرآن کریم مسلمانان و خارجیان سوزانده می شود ولیکن باز هم دشمن قرآن را دوست و دوستان حقیقی قرآن کریم را دشمن خطاب می کند. به تاریخ مذکور بعد از زر در ولایت ننگرهر سوالی خوگیانی جنگ بین مجاهدین و افواج مرتد داخلی و خارجی صورت گرفت. که این درگیری تقریباً دو ساعت دوام داشت که در نتیجه این درگیری نظر به های حکومت مرتد افغانستان 4 تن از مجاهدین شهید و 7 تن دیگر زخم برداشتند در همین حال الله مجاهد از کشته شدن افراد کسیر اردو ملی و الملل خبر میدهد هفته ربیثانی مطابق 28 فوریه در یک ماه گذشته در ولایت بدخشان در اثر های زیاد 50 کودک از مرض سینه بغل وفات کردند و در همین روز در اثر کوچی در ولایت بدخشان ده تن کشته و بیست تن دیگر مجروح گردیدند با تاریخ مسکر در شهر و مرکز ولایت هلمند یک فرد مسلح سوار بر یک موتورسیکل بود دو افرادی پلیس را بازر بگروله به با قتل رساند هشت روی آسانه مطابق بیستونوی فیورواری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در سرک شاروالی و قماندانی امنی شهر مسکور. بالای قطار نیروهای ناتو توسط موتر کرولا عملیت استشهادی سرعت گرفت که در نتیجه هفت تن از آساکر خارجی کشته و هشت تن دیگرشان زخم برداشتند همچنین در این عملیت دو عراد موتر حربیشان نیز تخریب گردیدند با تاریخی مسکور، در کابل بانک شهری دالقان مرکزی ولایت تخار در نتیجه انفجار ماینی کناری جاده یازده مجروح گردیدند. در میزد در شهر مسکور دو فرد قاچاق مواد مخدر با 15 کیلوگرم هیروین توسط پلیس بازداشت گردیدند. 8 رابیه استان مطابق بیست فوریه در حوزه اول شهر پانشیر در نتیجه انفجار گاز مایع 13 پلیس زخمی گردیدند که از این جمله احوال ده تن آنان وحی می باشد. با تاریخ مذکور ساعت یک بجای شب پنجشنبه در ولایت هلمند یک فرد ملکی سلاح اردی ملی را گرفته دو تن اساکیر ناتو را به قتل رساند و یک تن یانان را زخمی ساخت 8 روی آسان مطابق 29 فوریه در ولایت نورستان مجاهدین امارات اسلامی یکی از هلیکوپترهای نیروهای ناتو را سقوط دادند که در نتیجه هلیکوپتر مذکور با تمام سرنشینانش به هلاکت رسید پاکستان دوی ربیستانی مطابق 23 فیبروری در منطقه شکری در نتیجه انفجار ماین برادران مجاهد نظر به گفته های شاهدین عینی در این عملیات پنج فوج به حلاکت رسیدند. سه ربیستانی مطابق 23 فیبروری پینجه تن از آساکر پاکستانی که پانزده تن آنند با های خود به سوی مراکزشان روانه بودند که تحت کمین برادران مجاهد قرار گرفتند. برادران ما با همکاری انصار به عملیت آغاز نمودند که در نتیجه جنگ شدید ده تن آنان به قتل رسیدند و به برادران مجاهد هیچ نوع تلفات مالی و جانی وارد نگردید سه ربیستانه مطابق 24 فیبروری در شریف پشار در اثر یک عملیات استشادی چهارتن از دفاج مرتد پاکستانی کشته شدند چهار ربیستانه مطابق 25 فیبروری در وزیرستان شمالی یک آمریکایی ت نماود شش ربیصانی مطابق 27 فوریه در منطقه نوخار صوب پختونخوا بالای امیر حیدر حوتی که وزیر اعلی صوب پختونخوا است توسط متسایک عملیات انفجاری صورت گرفت که در نتیجه آن 6 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند ولی کن متاسفانه خود این خبیث جان با سلامت برد 7 ربیصانی مطابق 28 فوریه یک بسی مسافر برای از راه البند بسوی گیلگیت در حرکت بود قریه هرمنالا که در مناطق کوهستانی راه ابریشم قرار دارد از مناطق مشهور قبایل سنی مذهب به شمار می‌رود مقامات پلیس گپتاند که این افراد مسلح با یونیفرم نظامی ملبس بودند بعدا موتر متوقف کرده که از مسافرین داخل موتر اسنادشان را طرف کرده بر حجدتن که شیعه مذهب بودند گلوله باری کردند. تحریک طالبان ادعا کردند که این انتقام قتل مسافرین سنی مذهبانی که یک ماه در منطقه گلگیت صورت گرفته بود. به تاریخ مذکور در شهر پشار یک فرد مسلح یک مرد و یک زن چینایی را بازر بگلوله به خطر رساند. یمن؟ چار ربی آسانه مطابق 25 فوریه در نزدیکی ریاست جمهوری یمن در اثر انفجار یک ماین 26 تن کشته شدند. سوریه در طول امین افته در سوریه روزانه ستها نفر کشته شدند که بیشتر کشته شدگان را زنان و اطفال تشکیل میدهند. در امین حاضر روزی چار شنبه نیروهای سوریه با قوی زمینی بالای شریح همس حمله بردند. لندن دوی روی آستانه متابقه 23 فیبرواری اعضای پارلمان آن کشور در یک هوتلی که در جوار پارلمان موقعیت داشت داخل شدند در آنجا در نتیجه بیهوشی که از نوشیدن شراب برایشان حاصل شده بود با هم دیگر درگیر شدند توری که حتی پلیس نتوانستان آنها را از این کار باز دارند چهار روی آستانه متابقه 25 عابد خان قاری، یکی از امامان اوزبکستان از سوی افراد ناشناس که مسلح با توفنگچه بودند در خانه اش مورد حجوم قرار گرفت که در نتیجه وای زخمی گردید در امین حال مردم میگویند که در این کار دست استقبارات یوزبکستان داخل بوده است زیرا این شخص مردم یوزبکستان را به شریعت اسلامی دعوت میکرد. اسرائیل سینور ابی آسانه متابق 24 فوریه یک گروه از جوانان عرب بر بالای دو اسکر یهودی حجوم بردند اسباب جنگی جوانان عرب در این حجم بوتال پیترول و سنگ بود در همین حال یکی از جوانان این گروه توسط توته آهن بر سر یهودی ختمی نویسد شش ربی ساره مطابق 27 فیبرواری یک شخص فلسطینی در هفته گذشته از سوی اساکر یهودی به ختم رسانده شد اشتراک این جنازه تقریباً 2000 نفر بوده در میدان اقصا با پلیس درگیر شدند البته این اشتراکنندگان پلیس را توسط سنگ و آتش هدف قرار میدادند واشنگتن 8 ربیعوسانه مطابق 29 فوریه حکومت آن کشور اجساد خاک شده ی کشته شدگان 11 سپتامبر را بعد از 12 سال به دری انداخت در همین حال وارثین کشته شدهگان دست به اعتراض زده گفتند که چرا حکومت امریکا به اجساد ما به حرمت نمی نماید البته امریکا از آن از داساکری که در جنگ عراق و افغانستان کشته می شوند نیز با دریا می اندازد و بالاخره حکومت های غربی همیشه کشته شدن افراد خود را در جنگ کنونی به جهانیان اعلام ننموده از دروغ کار می گیرند ولی حقیقت در نزی الله تعالی است در امین حال تلفاتی که به ایشان در یک ماه از 15 دسامبر 2011 میلادی ایلا 15 ژانویه 2012 میلادی به ایشان وارد گردیده به دسترسی ما قرار گرفت که اینک به طریق مختصر به شما بیان می شهادت هفت برادر استشهادی در چهار عملیات شهادت طلبانه دوستد و حملات حجومی بر مراکز سریبی ها و از اسوی مجاهدین حلاکت 208 تانک حربی 103 عملیات کمین بالای عساکیر غربی و مزدورانشان حلاکت 256 تانکر تیل ناتو کشت شدن 1063 اسکری افغان تباهی 232 موتر عادی حکومت افغان و غربیان 310 عملیات ماین ریموت کنترول 133 عملیات راکت سقوط 3 تیاره بدون سرنشین و شش هیلوکوبتر و بلاخره تیداد کشتشدگان احساکیر سلیبی در یک ماه به 1180 تن میرسد شنواندگانی عزیز این بود داشته های برنامه امروزی ما تا برنامه دیگر خداوند منان یار و یاورتان و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته لبيك اسلام البطوله في كلنا نبض الحما كلنا نبض الحما لبيك واجعل من منها لعزك سلم سلم سلم لبيك اسلام كلنا نبض الحما كلنا نبض الحما لبيك واجعل من جماج منها لعزك الشباب لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك هذه الجموع شملها في دولتي شملها في دولتي ولن سوف تنهض كي تحطم باطلا في دولتي باطلا في دولتي هذه الجموع غدا سيجمع شملها في دولتي شملها في دولتي ولن سوف تنهض كي تحطم في باطلا في فوق الشامخه زمرتي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك يا قدس اني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي فتمن ولن ارضى تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي تستبيح تستبح كرامة ذي قربو حيفا جل الأنف فصاحت غضة لبيك، لبيك،, لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لو ندماء غدا سصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سوّف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي لو ندماء غدا سصنع من كتابي عزتي من كتابي عزتي ولا سو فنقضي كي تعيش على الكرامة أمتي أمتي أمتي ولسوف تهدف باسمه الأطفال عاشت رايتي لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك لبيك لبيك حفن جنود الله عادت تنطلق من مسجدي, من مسجدي من من معتدي من من معتدي تنطلق من مسجدي تني يهود الغدر تثأر من لي من معتدين من لي من معتدين حفن جنود الله عادت تنطلق من مسجدي تنطلق من مسجدي تني صليب الغدر تثأر من لي من معتدين لبي من معتدي تعلي هتاف الحق تنهض من شريعة احمدي لبي لبيك لبي لبيك لبيك, لبيك لبيك لبيك يا ربي إني قد دعوتك, دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي وانتظر لقاء يوما فعدك الرفعه رفعتي رفعتي يا ربي إني قد دعوتك فاستجب لي دعوتي فاستجب لي دعوتي فاستجب تو انتظر اللقاء يوما تعكرتاتي رفعتي هذا سبيل المؤمنين فانا من اللي لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك اسلام كلنا نبدي الحما كلنا نبدي الحما لبيك واجعل من جماج منا لعزك سلما سلما لبيك اسلام البطولة كلنا نفي <تصفيق> الحما كلنا نفي الحما لبيك اجعلني من جماج منها لعزك سلما سلما سلم نبيك عطشا لوسكب الشباب له الدم لبيك لبيك لبيك نبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك